بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآلِه وصحبه أجمعين أما بعد روز الجمعة برؤوده صنعتها داره روز الجمعة صنعتها روز الجمعة الله إشاره بيش خايم فقط فقا يك مطلب ياس كي تأكيد الروئي مساجد خصاً دار نماز الفجر إنك عم توك ابن عباس أدعنا ممكن كان النبي سكان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة لفلام ميم تنزيل سجدة هل أتا على الإنسان حينه من الدهر این ده سوره را رسول الله صلی الله علیه و وسلم می‌خوندن در نماز صبح روز جمعه هرچند که بعض از علمان میگن که مداومت نباید روش داشته باشه ولی خب امن عباس رضی الله میگه که رسول ص ص این سوره ها رو میخونن این به طور معمول میخونن و از امام هستند که اتفاقی میکنن به قسمتی از سوره سجده یک قسمتی یک صفحه شیک جو میخونن یک صفحه بعدی یا قسمتی از اون در رکعت دی بعدی خیلی از علما خصوصا علماء مالکی مذهب سخت گرفتن در اینجا که این عدم التزام به سنت رسول الله صلی اللہ علیه و سلم به هدیش به روشش سلم باید اکتفاق بکنه به روش رسول الله صلی الله علیه و سلم نباید از اون چیزایی که من در آوردی خودش یا دیگران یا خاطر رضایت مردم بخاطر بزنه از شریعت بزنه از سنت باید باید انسان اون سنت اون طوری که وارد شده بهش عمل بکنه خصوص چیزی که تحکیدم شده در طبای فقی بهش خوندن علف الله سجده و حلتا از جمله سنت های روز جمعه الان رو من به ترتیب میگم یکیش شرف فلخ از جمله سنت های روز جمعه زیاد صلوات فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلا در بحث صلوات مفصل پیرامین صحبت کردم اینجا حدیثی که قبلنا نشاره شده بازم بشاره میکنیم که فضیلت جمعه هم درش است رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام می فرمایان من افضل ایامکم یوم الجمعه ان من افضل ایامکم یوم الجمعه بهتن روزهای شما روز, روز جمعه است فيه خلق آدم فيه قبر در اون روز خلق شده آفریده شده و قبض روح شده و فيه نفخه صعقه در این روز روز جمعه اسرافیل در شیپور در سور می دمه یعنی دنیا دگرگون میشه نفخه اولی هست کل من علیه فان میشه همه نابود میشه و بار دوم که اسرافیل در سور میدمه که نفخه سعقه هست که در اون شیپور وقتی که میدمه قیامت برپا میشه همه در صحنه محشر حاضر میشن خب بلا این دوباری که در سور دمیده میشه و اسرافیل میدمه در روز جمعه هست فاکفرو علی من السلات فی پس بر من در این روز سیاد درود و در روز جمعه از وقت خورشید غروب میکنه روز جمعه وقتی گفته میشه از غروب خورشید روز پنجشنبه است پنجشنبه روزش که تموم شد خورشید که غروب میکنه روز جمعه از اون وقت شروع میشه از اون وقت ما میتونیم سوره کهف رو من بخونیم. ولی غسلمون نه غسلمون برای جمعه است ولی نماز جمعه است ولی که سوره کهف را میتونیم صلوات را ما میتونیم از اونجا آغاز بکنیم و اون صلوات‌ها رو بفرستیم تا این صلوات وسیله ای باشه برای حفظ ما از اون سختی‌های روز قیامت خصوصا اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله به سختی‌های روز قیامت و اون کیقامتی که در روز جمعه برپا میشه اشاره میکنه میگه چون در این روز قیامت برپا میشه شما بر من زیاد صلوات بفرستید به دادتون بر از این صلواتتون این دعاتون فان صلاتكم معروضه علي وبدون يدامك صلواتتون برمن برمن عرضه میشه صلوات بر الرسول صلی الله علیه وسلم بر حق خودته هم که در حدیث اومده یک بار صلوات بر الرسول الله علیه وسلم 10 بار صلوات بر خودته الله جل وعلا سوابهات نیکی ده برابر به شخص برمیگردونه قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت جثور فسوده شدی و صلوات ما بر تو عرضه میشه فقال إن الله عز وجل حرم على الارض اجسد الانبياء الله جل و بر زمین حرام کرده که جسد بیا پوسیده بشه فرسوده بشه و در این حدیث اشاره به این هست که رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند و کیف تعرض صلاه علیك چه تقرار عرضه میشه و ان صلاتكم معروضه علی معروض عارضه میشه یعنی معارضه میکنه فرشتگان تو که در حدیث دیگه آمده فبلارض ملائکه سیاحون سیاحت میکنن مجالس ذکر و فرشتگانی مسخرن بشنیدن سلوات که بشنمن و بر رسولات در سرای برزخی عرضه بکنن عرضه میشه پس این نیست که رسولات خودش مستقیمن بشنوه. سلوات ما هر جا باشیم در دنیا بر رسول صلی علیه وسلم عرضه میشه از سومی سنت ها و آداب روز جمعه قرص کردنه نسل حدیث دلات بر وجوب داره رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که جمعه واجب بر هر مکلف است. هر کسی به بلوغ رسید، سن بلوغ رسید، واجب است که روز جمعه رو بزنه. خب این نص حدیثه. هرچند که اون تقسیمات فقی واجب و مستحب و مکروه از زمان رسول الله نبوده، ولی خب این کلمه وجوب حتمیت رو می رسونه. ما دیگه نمیام چک و چون بزنیم نه این سنتینه نه این فلانه و این سببی و غیر سببی و فلانه. رسول الله صلی الله علیه و آله امر بهش. در روایت دیگه می فرمائند: اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعة فليغتسل. عد حدكم انیه اعتتیال جمعه اگر کسی از شما خواست بیاد به جمعه نماز جمعه. فلی یخ تصیل غص برای جمعه. خاطر همین گفتیم وقت غک قبل از جمعه برای جمعه هست نه اینکه تو شب غص بزنی بعد عرق میکنین بیاید نماز جمعه. نه هدف پاکیزیگی و بوی خوش و معطر اومدن به نماز حاضر شدن به نماز. نه مجرد غسل قادر همین در وقت شروع غص گفتن که یه بعد از طلوع خورشید. بعد از طولعه خورشید که وقت جمعه داخل میشه که الان میاد سباب هایی که شهر گذاشته وقت انتهاش یه نماز جمعه که تمام شد وقت آغازش شروع خورشیده. ولی سوریه کهف و نمیدونم اون سلبات دادن از غروب خورشید روز پنجشنبه شروع میشه تا غروب خورشید روز جمعه چهارمین آداب از آداب روز جمعه و سنت ها پوشیدن لباس زیباس انسان حتما که برای هر نمازی مأمور لباس زیبایی بپوشه یا بنی آدم خود زینت خودتان را عند کل مسجد یعنی عند کل صلاح سعی برای هر نماز خودشو آراسته بکن لباس زیبایی بپوشه. ولیکن بر جمعه برای نماز جمعه تأکیدی بیشتری شده. چنانچه در حدیث عبدالله بن سلام داریم که رسول الله صلی الله علیه و میکنه میگه میفرماین ما علی احدکم لو اشترى ثوبین چی میشه یکی از شما دو دست لباسی هم بخره برای دو دست از منزه و و ردا هست. سوى ثوب المهنة غير اظن لبوس الكارش و در روایت دیگه رسول الله, صلى الله عليه الله علیه و سلم می فرمایان الا این آداب و سنت هم درش هست و حکم اضافه بر اون چیزی که در اون روایت اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماتند حدیث سلمان فارسی هاش حدیثی قبلی در ابوداوود حدیث در بخاری لا یغتسل الرجل یوم الجمعة کسنیز که انجام بده و من اون غسل خودش را چنان چه باید اون غسل رو انجام بده انجام بده باید ده نم ده. من دهنه باید از اون روغنی که از روغن عطری ازش استفاده بکنه ایمه مست من طیبی بیته یا از عطری که در خونه هست از اون عطر استفاده بکنه ثم یخرج فلا یفرق بین اثنی ودریوات و بیسه من صالح ثیابه بهترین لباسشو در روز جمعه پوشید و همچنین تاکید شده به لباس سفید و خیر و ثیاب بکن البیاق بهترین لباس شما هم سفیده بس بهترین لباس من صالح ثیاب بهترین لباس را بپوشه عط بذاره ثم یخ رج و فلای و فرق و بین سپس بیا بارده مصب بشه جدا نکنه بین دون کنار کناره هم دیگه نشستن. ثم یو ما کتب له سپس نماز بخونه اونقد که میتونه یک از سنت ها هم که الله اشاره بازم بهش خواهد شد که نماز روز جمعه قبل از جمعه ما مطلق داریم قبلی اگر نداریم مطلق داریم یعنی ما میتونیم بعد از وقت دخولش وقت دو ها وقته که وقت خورشید غروب رو ساعت بعد از شروع از اون موقع وقت جمعه شروع میشه که ما بشتابیم بس بسیار نماز جمعه بریم مسجد که در اولین ساعت مثل کسی که شطوری قربانی کرده الی آخر که حدیثش بازم قبلا اومد الان بازم دوباره خواهد اومد کسی از اون وقتی که وقت شروعه بعد از اشراق اومد در مسجد نماز خون تا وقتی که من بر سر منبر ثم يسلم ما كتب ثم ينصت اذا تكلم الامام السيف ساکت بش زمانی که ما خطبه میخونه الا غفر له ما بينه و بين جمعه الاخرى مگر قر انك گناهش ما بين این جمعه و جمعه بعدی بخشیده بشه در روایتی و زیاده 3 تا ایام اضافه بر اون 3 روز به خاطر اینکه حسنه ده برابر میشه که ان شاء الله بازم این در ضمن روایتا ان شاء الله بهش اشاره خواهد شد بس ده روز ثواب تو داری در صورتی که این کارها رو انجام بدی از پوشیدن بهترین لباس از خوش بو کردن، قص زدن، این همه آداب احکام روز جمعه است که در این حدیث بهش اشاره شده، گوش دادن خطبه و الی و ثوابی که در شهر گذاشته شده، این یک از احادیثی که قبلاً یاد کردیم که در بحث فضیلت روز جمعه خواهد آمد. خب پس این بوی خوش چه از عطر روغنی و چه از دیگر عطرهایی که ما داریم و پوشتن بهترین لباس. شیشمی زود آمدن، زود هنگام آمدن به نماز جمعه. چند تا حدیث داریم. من قاهم بفشاره بهش قاهم کرد اتشان که با الفاظ مختلفی هم اومده اولین حدیث حدیث ابو هرر رضی الله عنه در سیه هم بخاری هم مسلم اومده من اغتسل یوم الجمعة غسل الجناب کسی غسل جنابتش روز جمعه انجام بده ثم راح ف الساعت الاولا سپس در اولین ساعت روز جمعه دوازده ساعته از اون وقت اشراقش از اولین ساعتش حالا تقسیم میشه نه اون ساعتی که خودمون یک ساعتی که خودمون نه ساعت منظور قسمتی از زمان که بین اشراق و بین وقت ظهر که زفت زواله پنج قسمت شده در این حادیث قسمت اولش کسی که این غسل جنابت انجام بده الله خوصا امن قیم بحث فضیلت غسل جنابت و بحث جماع هم بستری هم در روز جمعه و در این وقت هم میکنه الله در احادیث که اومد من اقتسله یوم الجمعه و غسله که هم غسل اشاره شده هم اختسال که یکیشون ابن قیم میگیره بر اینکه بر غسل جمعه هست و دیگری غسل جنابات یعنی این دوتا غسل رو با انجام میده. البته من گفتم آره یک وجهه و اینجا ولی اشاره شده تاکید شده بر این من اختسل يوم الجمعة غسل الجنابه. غسل جنابتشو انجام بده. سپس در اولین ساعت روز جمعه بره به جمعه قربه کأنما قرب بدل مثل قربانی کرده و من راحت الساعه ثانیه کف کأنما قرب بقره دار دومين دو ساعت مثل كه الله جل و متقرب شده با قرباني گاوي و در ساعت سوم به في الساعه الثالثه فكانما قرب كبش اقرب مثل كسي قسفاني قرباني كرده و من راحت في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه كسدال ساعت 4 بره مثل كه مرغي قرباني كرده و من في الساعة الخامسه پنجمين ساعت فكانما قرب بيضه سكي تخون ورقي قرباني كرده در الله داده فيدا خرج الإمام وحاضره الملائكه يستمعون الذكر امام بیاد بالای منبر دیگه اون فرشتگانی که مامور بودن به نوشتن اسمها در دفاتر خودشون صحیفه های خودشون میبندن میان به پای ذکه میشینن گوش میدن قبلا اشاره شد این حدیث ابی هریره علی با این لفظ در لفظ دیگر اومده اد کان یوم الجمعه قعدت الملائکه على ابواب المساجد روز جمعه که از نماز همون گفتم اشراق خورشید که طلوع میکنه قعدت الملائکه ملائکه میشینن على ابواب المساجد میشینن جلوی در مسجد فیکتبون الناس من جاء من الناس هر کسی میاد از مردم از اون مردم نام‌هاشون رو می‌نویسن علی منازلهم بر حسب رتبه هاشون رتبه اولی کسانی که شطوری رو را الله جل و علا و قربانی کرده و رتبه دوم گاوی و الی آخر علی من اضر رجل قدم جزورا ورجل قدم بقره مردی یعنی منزلتش اینه که شطوری قربانی کرده و دیگری گاوی و در انتهای حدیث میاد میگه که فاذا اذنا المؤذن جلس الامام مؤذن که اذان میگه امام که میشینه راجلس الامام علی المنبر امام میشین روی منبر طویته الصحو خودشون رو میبندن که دیگه اسم کسی دور نوشته نشه اینها کسانی هستند که دریافتن الا جمعه با فضیلتش و دخلوا المسجد یسمعون الذکر بعد از اون میان امام که نشست روی منبر میان فرشتگان به گوش دادن اون ذکر صحابه خیلی تاکید دارن روی این قضیه رو خصوصا در عملشون زود هنگام رفتن به نماز جمعه تا جایی که در صحیحین داریم در حدیث سهل و نسعد میات ما كنا خیلی ولا نتغدى الا بعد جمعه غذا معمولا همون نهارشون بود که در وقت صبحانه میخوردن میگه روز جمعه ما قیلوله هم قبل از زمان ظهر بود میگه ما قیلولمون میانداختیم بعد از نماز جمعه همچین چی نهارمون نهارشون قبل از ظهر بود قیلوله وقت خوابشون هم کی بود قبل از میگه روز جمعه به خاطر جمعه ما وقت نمیگردیم خلوله بکنیم و نهارمون بخوریم مگر بعد از چی؟ بعد از جمعه این شدت حرص هست به حضور در مسجد حضور مبکر یا همون زود هنگام برای دریافتن این فضیلت خصوصا شطور، گاو حالا چقدر آنها حریص بودن چقدر ما حریصیم انسان خودش رو بسنج دیگه وضع بکنه چقدر حریص بر سواب بر پاداش قدیم ما میگیم پیرمردها صبح کے شروع میکرد کہ ادمی رفتہ نماز جو مؤصف اول نشسته ولی الان همه زاهد در انجام عبادت ها شدن زهد دارن در عبادت نه در دنیا ادم با زهد در دنیا داشته باشه ولی الان ما شدیم زاہد در عبادت نمیخوام عبادت نمیخوام ثواب نمیخوام فضیلت نمیخوام پاداش نمیخوام نه دنبال شطورشیم نه دنبال گا اما تخمر بدم تخمرش هم راضی سبحان سابق الله سابقون سابقون نیست سبقت در پیشتازی در امر خیر در ما ضعيف شده و اونم بحث بر میگرده چی؟ به غفلت قلب پلم شده و بسته شده و بحث بی نیازی من از اخرت عدم تذکر و یاداوری ها دیگه نه خطبا حق این چیز را به مردم گفتن و نه مردم دنبالش بودن و دنبالش هستن همه مسئولن چون کسی که نگه مثل من و چون کسی که عمل نکنه مثل اون کسی که الان میدونه و عمل نمیکنه همه مسئول الله ما را ببخشه خب پس هنگام رفتن این ششمین سنت و ادب روز جمعه هفتمین پیاده رفتن پیاده رفتن به سوی نماز جمعه نه سوار رفتن پیاده رفتن تأکید رسول الله صراحا بر این چند تا حدیث اوس بن اوس داریم رضی الله عنه که میگه رسول اساس فرمودند من اغتسل یوم الجمعه و ابتکر و ودنا و استماع وأنصط كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها سبحان الله كيف كان أجر بفوضاش؟ دره كيف عملية؟ يعني كيف كان جمعية بزرق عزيمك إن قد أجر بفوضاش بزرق براش؟ الله جل على قزاش تخص در بعض السطرق ربعات شنين مدين من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إن جشه شهد ومشى ولم يركب تاكيده بره پیاده سوار نشست سواره نرود توی مسجد ودنا واستمع ودرواتی و لم یلغظ وانصت نکنه کاری بیوده انجام نده یعنی به غیر از خطبه به چیزی که مشغول نشه کان له بكل خطوه و در مقابل هر قدمی یخطوها هر قدمی که به سوی اون نماز جمعه برمیداره داره الا اینکه الا باشه راهش دور باشه مسئله دیگره ولی خب نوکنی فضیلت آمادگی و مهیا شدن برای جمعه کان له بكل خطوه یخطوها اجر سنتن پاداش یک سال چی؟ سیاه ماه و قیامه همسته که یک سال کامل روزی گرفتی و نماز خوندی یک سال کامل روزه گرفتی یک سال کامل نماز خوندی نکن دریافتن این ثواب این فضیلت با آماده شدن مهیا شدن و رفتن و قدم گذاشتن به سوی نماز جمع یعنی چقدر این جمعه پیش الله عزیزه چقدر بزرگ نظر الله جل مطلب که این مسائلی که در این حدیث به اشاره شده من اختسل یوم و غسل چه فرقی بین اختسال و بعضی بعضیا گفتن اختسال رفع حدث از جنابت اختسال از جنابت میشه که حدیث قبلیش اشاره شد من اختسل یوم الجمعة و غسل جنابه بعد از هم بسری بس مثلا انسان غسلش انجام بده و غسل غسل, غسل. گفته شده شستن سر بیشتر هم روی این تاکید دارن و گفته شده شستن بدنی کسی خودش تن خودش رو بشوره یا غسل انجام بده و یا اینکه که تنش رو بشوره برای جمعه کاری به جنابت نداشته باشه برای جمعه چون غسل جمعه داریم غسل جنابت داریم خب یا مثل ابن قیم این دو رو هم دیگه تفکیک می‌کونن میگن این فصیده برای کسی که هر دو رو با هم انجام بده یعنی غسل جنابتش یه طرف و غسل جمعه طرف دیگه و بیشتر علما چنین نمیگن میگن که من اغتسل یوم الجمع و غسل این غسل تأکید بر اغتساله مثل مشه اولا لم يرکب. خب رفتن پیاده یعنی سواره نره و لم یکب تأکیدی بر پیاده رفتن میگه اغتسل و غسل هم همیدور ربک و, بکر و هم همیدور هم هر دو تا به یک معنا یعنی یعنی بکر و ابتکر به معنای زود هنگام رفتن به مسجد معنای دیگری غیر از اون زود هنگام رفتن نداره بعضی گفتن که نه بکر و ابتکر به معنای بکر در اول وقت بره و ابتکر ای اول الخطبه مثلا ابتکر یعنی بره, بره فزيلات دار يفتنه دار يفتنه خود رسید ولی خود به رسیدن فضیلت نیست بحث دریافتن دریافتن خود نمازه یافتن خود روز جمعه است با اون فضیلتاش کسی که روز جمعه را رو دریابه با اول وقتش و تأکید شده بر این بکرا و ابتکرا حریص باشه بر اینکه که زودهنگام بیاد به مسجد ودنا سپس بیاد به خطیب هم نزدیک بشه و سپس گوش بده و در روایتی مشه ولم یرکب ولم یلغو لغم نکنه حرف بیوده و انصطه ساکت بشه این در مقابل هر قدمی که برمیدار اینقدر سواب داره که سوابش رو ما گفتیم پس الان هفتمین و هشتمین ادب که در این حدیث به ششاره شده پیاده رفتن و هشتمی هم نزدیک شدن هم به امام که در این حدیث و دنه و ستمه دنه یعنی دنا من الامام نزدیک بشه به امام نزدیک بشینه و به هنگام خود به هم غیر از این که نزدیک بشه رو به امام بکنید یعنی یکی از آداب هم همینه ان شاء بازم به اشاره خواهیم کرد نهمین سنت های روز جمعه آماده بودن برای دعا کردن در آخرین ساعت روز جمعه که وقت اجابت دعاست ما دو تا حدیث داریم صحیح یه حدیثی داریم که معروف در صحیح مسلم از ابو موسی اشعری که صحیح موقوفه موقوف وقتی گفته میشه یعنی از قول ابو موسی خودشه نه از قول پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو موسی میگه هی ما بینن يجلس الامام و ان تقضى الصلاه وقتی که ما بر سر منبر بشینه تا امام سلام بده این وقت اجابت دعا در روز جمعه است که از رسول الله ص ثابت نیست از کی ثابته از قول ابو موسی اشعری که صحابی ولی از اون چیزی که از رسول الله خودش ثابته وقت اجابت دعا که چون ما میبینیم دیگه بین دو تا مردم دست بلند میکنن به دعا کردن بخاطر همین حدیثی که در صحیح مسلم از قول ابن ابوسه اشری در صورتی که حدیث زیفه یعنی اون چیزی که از بپیام نسبت داده شده ضعیفه بلکه خاص قول ابوسه صحیحه و صحیح اون چیزی که ادراص ثابته این که وقت اجابت دعا در روز جمعه آخرین ساعت است که رسول الله صلی الله علیه و وسلم می‌فرمایند یوم الجمعة 12 ساعه روز جمعه دوازده ساعته لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شیئا الا ته الله اياه در اون ساعت کسی نیست مسلمانی نیست از الله بخواهد چیزی از الله نمیخوایم مگر الله بهش میده الا اتاهو یا فلتمسوها آخر ساعه بعد العصر فلتمسوها دم ولش برید جویایش باشی در آخرین ساعت روز جمعه این حدیث ماما امام بود و همچنین نسائی روات میکنه و در صحیحین در بخاری مسلم داریم همین روات از روایت ابوهریره که بعد ابوهریره میگه ابو و اشار بيده یقللها وقت کمه یعنی وقتت عندك ی وأشار بيده يقلل يعني وقت كمية درواتي ساعة خفيفة يك وقت خيلي كمية في آخر روز الجمعة. صحيح من الرواد هذا بخاري مسلم آخر ساعة الجمعة. أهم شيء إن حديث ده من حديث عبد الله بن سلام إن حديث جابر حديث أبو رامب بمعنى حديث جابر حديث بردي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه كم قلت يا رسول الله شو يهودي بد أز تورات ناكم كونه قلت ورسول الله صسم جالسون رسولنا شاسيب ورسول بورس قفتم إني ما نقفتم بيش إن لا نجد في كتاب الله من زوراته في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله في شأنه إلا قضى الله حاجته مدر من إدارة كتابه دروز الجمعة يك ساعتها سبقت جوات الدعاء كثني سد الله بخال ما قال إنك الله بيش بده قال عبد الله فأشار إليه رسوله أو بعض الساعة يك عندك يا الساعة بعدين بعده بخت كمية فقلت صدقت أو بعض الساعة يك قسمتي يا بعده قلت أي ساعة هي شو <تصفيق> وقت قال هي آخر ساعة النهار آخرين ساعة روز جمعة قلت من قفتن يا عبد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست ساعة الصلاة وقت النماز نيس شون در نص حديث در تورات ما من عبد لا يوافقها عبد مؤمن يصلي خط إنجم وقت النماز نيس كه قال بلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثمّا جلس شخصی نماز بکنه سپس بیشینه، لا یحبسه یلّا صلاه دانیشینه مگر با خاطر انتظار نماز، یعنی تو نیم ساعت قبل از نماز عصر نشاسی بقسشی چی دریافتن این ساعت که داری بعد نماز مغربه تو رو بکنی لا یحبسه یلّا صلاه، یعنی تو فقط بخاطر خاطر نماز نشاسی، یعنی این وقت رو داری آبی وقت جواب تو بعد نماز مغرب بکنی، فهوا فصله، آن نشاس سنت قبل از اون نماز آن نیمساعتیک ساعت, ساعت انگار در نمازی. انگار که تو در نماز بس این تا حدیث یا این تا حدیث تحکید دارن به آخرین ساعت روز جمعه که وقت چیه؟ وقت اجابت دعا دهمین عداب سنت از سنت های روز جمعه خوندن سوره الکهف معروف اون حدیث ابو سعید خدری ردی الله عنه نز نسائی و بیحقی که بیاد رسولات سفر فرمودن من قرأ سوره الکهف پی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بين الجمعتين من قرأ سورة الكهف كسي كي سورة كهف رأى رو روز جمعة اضاء له ان سورة كهف سبب الرشانوين بشه برئي شخص بين اين جمعة بعدي اضاء له من النور يعني چنان روشان میکن با نورش ما بين الجمعتين بين ان دو تا جمعةش روشان میکنه روشان میکنه جمراهنش روشان براش میکنه در معصيات و گناهن والا با دقت خوندن و درست سلاوت کردن این سوره جای خاص خودشو داره و در روایتی نزد دارمی اومده منقره سرطه الگهفی لیلت الجمعه اومده لیلت الجمعه حالا چه گفتم شبش بخونه بعد از غروب خورشید روز پنجشنبه بخونه و چه در روزش بخونه چه بعد از جمعه بخونه فرق نداره مهم روز جمعه خوندنه که با غروب خورشید روز پنجشنبه شروع میشه تا غروب روز جمعه شیخ ابن باز رحمه الله میگه وقتش از غروب شروع میشه شیخ ابن میگه نه از طول شروع میشه و از صحیح چنان چه در سنن می داریم از غروب خوشی روز پنشنبه شروع میشه ما فضیلت های سوره کهف غیر از این هم داریم یعنی غیر از این چیزی که شما الان در این روایت دارید مثلا ما در سیحین داریم صحابی میگوید برا ابن عازب رادی الله عنه میگوید که داشتم س دیدم که حالا اصلا میکنه بعد ابر دیدم که نزدیک میشه نزدیک میشه تا به من رسید بدرصول صلی الله علیه و آله سکینه تنزلت الله جل که نازل شده از آسمان برای تلاوت قران تلاوت سوره کهف و همچنین رسول الله صلی الله علیه و میفرما کسی که ده تا از اول سوره کهف حفظ بکنه از فتنه دجال در امان میمونه اینا فضیلت های سوره باشه بر سوره کهف. هر جمعه خصوصا افزیلاتیک بر براش یاد شده نورانی شدن خصوصا دنیایی که الان ما داریم پر از سراکی دوره بر خودمون نیاز به نور و روشنایی داریم برامون روشن میکنه چهرهی که زندگیمون برامون روشن میکنه راه هدایت رو برامون واضح میکنه آشکار میکنه از سنتها یازدهمین سنت و ادب از روز جمعه زیاد نماز خوندن زیاد نماز خوندن قبل از نماز جمعه زیاد نماز خوندن چه درود رو گفتیم زیاد نماز خوندن قبل از نماز جمعه رسول الله صلی الله علیه و آله این حدیث داشتیم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له در نص حدیث ثم يصلي ما كتب له بحث خوشبو کردن خود داشتين لا يختص الرجل يوم الجمعة ثم يصلي ما كتب له بس نماز می خونم اینجا در این حدیث ثم ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له نماز می خونم وقت جنجایشش <سؤال> هست از وقتی که ورد مسجد بيشه سبس نماز بکنه ثم انصط حتى يفرغ الإمام، بس بيشه نتوان امام خطبهش تمام بشه من خطبته ثم يفرغ الامام من خطبته ثم يسلي مع این ایک از قسمتهای هست که در این حدثنا بشره شده که خطیب خودش بعد امام بشه امامه يفرغ الإمام <سؤال> من خطبة امام که امام مسجده از خطبهش فارغ بشه ثم يسلي معه مع کسی دیگر امام شد مشکلی نیست ولی اصل سنت بر اینه که خطیب خودش امام بشه خب الان پاداشش چیه من بیام زود هنگام به مسجد غسلم انجام بدم گوش بدم خود به خود به تمام شد اجرم چیه؟ غفر له ما بينه و بین الجمعت الاخرار و فضل ثلاثت ایم. دو تا جمعه براش بخشیده میشه و اضافه بر اون 3 روز و اضافه بر اون 3 روز و در حدیث دیگر هست این در مسلمه و در حدیث دیگر داریم که رسول الله صلی و میفرمایند صلوات ال خمس الجمعة الى الجمعة و رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر نموذی فرض پنجگانه جمعه تا جمعه رمضان تا رمضان کفاره ما بین اونها از گناه ها اگر از گناهان کبیر پرهیز بشه اگر از گناهان إن تجتلبوا كبائر ما عن نكفر عنكم سيئاتكم أقرأز كبيرها دولي قديد كسيئرها ترون ما مباشر هذا الرواية ديكار مالك مواليكا أشعري داري نازل تبرنيك من قيادة رسولة صفحة المودة الجمعة كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي تليها نعم أرز جمعة جمعية بعد كفارين وبينهن هاس وزيادة ثلاثة أيام وهذا في برون سيروس وذلك بأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هر کسی حسنه‌ای انجام داد ده بر اون پاداش داده میشه. بس 11 امین ادب زیاد نماز نافله خوندن روز جمعه هست وقتی که انسان وارد مسجد میشه برای نماز. تو اون که میتونه نماز نافله الله بخونه. 12 امین ادب و سنت از سنت روز جمعه حرمت سخن گفتن روز جمعه است. حرمت بازی کردن بازی کردن با فرش با سنگ حتی یک اس گفتن سبب میشه که تو دو فعل حرام شده یک طرف فضل جمعه را از دست دادن و از طرف دیگر گناهکار شدی، فضیلت هم از دست دادی. من قال اخی فقد لغا، در صور لاغو به دیگری شدی و با اون کار فضیلت جمعه را از دست دادی، اجر جمعه را از دست دادی. پس انسان باید مؤذظ باشه، حرف نزنه. روز جمعه حتی اص رفتن هم درست نیست، باید انسان گوشش به خطیب باشه. از جمله مسائلی که بهش اشاره شده جزء سنت ها رو کردن به طرف امام خطیبه به هنگام خطبه وقتی که امام بر سر منبر مینشست عبدالله بن عمر و غیر از صحابه رو به امام هرچند که حدیثی که اومده از ابن مسعود کان رسولسون ایرسه و علم مبر استقبلناه به نه این حدیث در اسنادش محمد بن فضل بن عطیه است کذابه هرچنکه البانی تحسین میکنه ولی قابل تحسینه نداره ولی البانی ها در سسلی صحیح تسحیحش میکنه در کا تضعیفش میکنه مرفوعش ضعیف طوری که روایت کرده ابن مسعود ولی از فعل اصحاب ثابته مثلا اینجا داره میگه که ما این کارو میکردیم از زمان رسول الله این روایت ضعیفه ولی که ابن عمر خودش اینافع میگه ان ابن عمر کانه یفرغو من صلواته یوم الجمعة قبل خروج الامام فاذا خرج لم يقعد الامام حتى يستقبله روز سنت تشکی میخون امام که مینشسته منبر عبد الله بن رو به امام میکرد و همشین از انس بن نبیشهی به هم همچینی روید میکنه و هم صحیح از انس و ابن عمر و دیگر صحابه این سنت ثابت و صحیحه که این کار رو انجام دادن خب وقتی که الان ما اینجا آداب ها و سنت ها گفتیم در کنارش یه سری چیزها هست شر تأکید کرده برش یعنی اضافه بر همیت دادن به این مسائلی که گفت از خوشبو کردن خودمون لباس بوشیدن قدس دادن غیر تأکید بر حضور در جماعت در مسجد در نماز صبح خصوصا این علال خصوص از بین دیگر نماز ها تأکید خاصی روش شده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم می فرمایند چنان چه آل با میکنه در سلسلی سیه حدیث 1566 رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیامه این افضل صلوات عند الله صلات الصبح یوم الجمعه تیف جماعه بهترین نماز نزد الله جل و علی نفضل الصلاوات علیه الله بهترین نماز ها از الله جل و علیه. از بین کل نمازها نماز صبح روز جمعه در جماعت نماز صبح روز جمعه در جماعت داماد به هندرکمان امشاب نمیدن امشاب از ازدواجمه شب تو صبح داره نماز صبح نمیاد یا دوست صرفی خان چی به عنوان که روز جمعه عتیره گشت. چه شما خاص صبح نماز جمعه ازشون چطور از تو فوت میشه اون روزی که الله جل و علا این اهمیت خاصی بهش داده و بهترین نماز رو قرار داده است بین کل و تمامی نماز های بهترین نماز ان افضل صلوات عند صلات و صبح یام الجمعه فی جمعه بهترین نماز تو, تو میخوابی اصلا چون درد اومد که بخوابی الله جل و علا این بهترین نماز رو قرار بده بعد تو به نسبتش بی اهم سنات اینکه اگر روز جمعه شخصی چرت زد جاشو عوض بکنه چرت در حدیث نور اساس میفهمه میفرمه اذا نعس احدكم في المسجد يوم الجمعه فليتحول من مجلسه جاشو عوض بکنه مجلسشو عوض بکنه این حدیث طالبانی در صحیح تسیحش میکنه حدیث 468 خب این 15 مورد من فقط فلاست کردم گلوچینگ کردم از این آداب و احکام مسائل دیگه هست متعلق به امام مثلا رسول الله در نماز جمعه به عنوان خطیب و امام سوره جمعه رو و منافقین رکعت اول دوم یا گاهی سب حسم ربک الا اعلا رو میخونن و هل اتاک حدیث الغاشیه رو میخونن خب سنت این دورها که تاکید شده ما در نماز جمعه بخونیم در نماز جمعه و رسول الله صلی الله علیه و سلام بر سر منبر سوره قاف رو میخونه حتی تا جایی که امو هشام ردیان عنهام میگه که من سوری قف را بر سر منبر از زبان رسول ها حبس کردم از بسکی میخونیم تکرار میکرد همچنین از مسائلی که متعلق به امامه این که رسول ها ساسا زمانی که بر سر منبر میستاد به دست میگرف حسا یا تیرکمانی را به دست میگرف یا شمشیر را به دست میگرف و رسول الله صلی و دو تا خطبه خود میخوند وسط دو تا خطبه می بین دو تا به فاصله اندکی بود و دو تا خطبه هم نزدیک به هم دیگه بود نه که خطبه دومی یه دقیقه باشه خطبه اولی نیم ساعت باشه و رسول الله صلی الله علیه و آله بود چنانچه در صحیح مسلمه و کان یخطب قائما و رسول الله صلی الله علیه و دستش به دعا در روز جمعه روی منبر بالا نمی برد مگر برای دعای باران استسقاء و اگر دعاو مي کرد باش ثبابه شعره در صحيح مسلم دانيسه از حديث عمارة ابن رؤيبه رضي الله عنك مي بياد بشر ابن ماروان رو مي بینه بل سن من بار دهساش رو رو مبال بوله بورده بعد كبشر ابن ماروان مياد فهي مي قبح الله هاتين اليده الله زش بكنا این دستاتو دوتا دستو الله زش بجهدونه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده كذا يقول نادينا برسول الله صلى الله عليه وسلم برمنبع وقتك دعو ميكون جوز انك باين سببه بأشاره بكنا وأشاره بأسبع بي المسبحة خادر رسول در همین حد حادثه بالا میکرد حالا سال پیش میاد مردم خود دستشون بالا میکنن مردم اشکال نداره پس اون امام بالا نمیگرد پیامبر بالا نمیگرد ما چرا بالا نکنیم خب رسول دعا میکرد خودش دست بالا نمیگرد چرا تو دست بالا بکنید صحابه میگن وقتی که رسول اعظم دست به دعا بالا میبرد برای ادای بورا ما هم دست بالا میبوردیم الان که دست بالا نبرده اونا دست بالا میکنن به نظر شما از باب اولا بالا نمیبردن خاطر همین اینجا این صحابی اماره داره انکار میکنه رو بشر خدا دست تو زشت میگردن داره خلاف حدی رسول زاده عمل میکنید خلاف حدی رسول رسول در عمل میکنه رسول سلام دستشو در دعا بر سر برد دستش برای دعا بالا نمیبرد مگر اینکه دعای باران بود دعای اسقا بود, دعا بود. نه پس مردم همه اشتباه میکنن این همه همه دستو بالا کردن برای دعا کردن مگر دست بالا کردن بده علاوه ان توطیع اكثرما في الارض یضلوک عن سبيل الله اگر میگه تا مردم بشی تا به دلیل نشی مردم تو رو گمراه میکنن این یتبعون الا اونا تابع اوناک زن زنه گمانن فکر میکنن دعا چیز خوبی که دست بالا بکنن همه جا دست بالا میکنن حتی اونجایی که رسوا شدن دست بالا نکرده خب رسول الله صلی الله علیه و آله گفت بهتره از اون علیه علی حسان و سلام رسول الله در اثر منبر روز جمعه دعا دست بالا نمیکرد تو دست داری بالا میکنی الا استثناء داشت صحابی میگه فقط دعای باران دست بالا میکن آدم با تابع دلیل باشه پیروه دلیل باشه نه پیروه احساسات یا پیروه عدله عام اینجا خاصه. صحابی داره انکار میکنه میگه من ندیدم رسول درست دست بالا بکنه و این حدیثم در صحیح مسلمه و از جمله آدابی که هست سرز جمله برای خطیب اینه که صحبتش جدی باشه نه اینکه اونجا به دنیا بپردازه نه که اونجا گزارش کارش رو بده یا گزارش کار کسی رو بده یا تبلیغاتی برای کسی برای دولتی برای کسی داشته باشه خطبه درست حکم دور کد نماز داره خود جای دور کد نماز گرفته عبادت اینه که بعضیا پسند سیاسی بهش میدن عبادی سیاسیه این من مندر آوردی من و شماست رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه‌هاش موعظه بود درس بود پن بود عبرت بود چنانچه در حدیث داریم ک صلی الله علیه وسلم لا یطیل الموعظه موعظه ی جمعه پند اندرز پند و پندو اندرز کن لا یطیل زیادی نمی کرد در موعظه دادن دا پندو دادن انما هن کلمات یسیره بلکه کلماتی بود چطور بود این اند کلمات کانا اذا خطب احمرت عیناه چشوش قرمز میشد اقول شدت و جدیت صحبت کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم احمرت عیناه و علی صوته صداشو بالا میبرد و با خش صحبت میکرد نهایت جدی بودن رو داشت حتتا کهانه منذرج انگار که لشکری رو داره سرسامام میده علاوه دشمن ایستاده و داره لشکری را راهنمایی میکنه لشکری را داره اندرز میده در مقابل اون دشمن خب این جدیته با شدت صحبت کردن خطیبه و خصوصا اینکه در قالب موعظه و پند این جهنم بر باشید این چیزایی که شما در جهنم میندازه این موعظه هست، این پند اندرز ایسان باید به شریعت بپردازه بون. چیزی که رسولا سیسان باش خدبه میخوندن. بغیر همین رسولا سیسان میفرمه این نطول صلاة الرجل و قصر خدبته ما این من فقهه طولانی بودن نماز شخص و کوتاه بودن خدبهش دلیل و علامتی بر فقه فهمشه درکشه نه اینکه من برای سر منبر بی ام خودنمایی بکنم سخنوری بکنم که مردم بگن من سخنرانم من خوب صحبت میکنم اونجا جای نمایش دادن نیست اونجا جای یاداوری و تذکر به روز آخرت موعظه است همونطور که خود های رسول الله صلی الله علیه و الیهم جانش جابر مسمره میگه کانلا یوتیل للموعدا موعظره لانی بکلم جمعه موعزاز جمعه جای پند اندرزه بالاتر هر می سوره قاف را میخونسه سوره قاف را برو بخون چی یه ذوره قاف که رسول الله صلی الله علیه و الیهم منبر میخون چه موضوعاتی هست در سوره قاف و همچنین اینکه اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان خود به دعاء می چه در خود بیاورد، چه در دوام. سنت دعا دعاه خونده می شد. نه با چی خاتمه می شد، بلکه خب دعایی ربنا تنه فی الدنیا حسنه. ویلا آخر سوند دعاه. بلی که خاص باشه نیامده چیزی با و رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبش از الحمد لله نحمد و نصلی شروع میکرد و بعد از اون میگفت اما بعد دو تا چهار تا آیه میخونه یا ای الی الی الی الی الی الی الله چهار الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی خیر کتاب الله وخير الهدي هدي و خیر الهدی هدی محمد حمد السنه یا الله رو می گف یعنی همون ان حمد اللہ نحمد و نسعینه و بعده یا يا یا الناس بعد از اونم اما بعد دوباره می و بعد می گف فإن خیر الحدیثی کتاب الله بعد از ام وعزه و پنداشو شروع میکرد. و این خطبی رسول الله صلی اللہ و سلم بود خیلی کتوهم ام وعزه و پنداشو می گف سبحانک الله بحمده سبحان الله بحمده و سلال محمده و لال محمد.